روزگاری تزاری بود که سه پسر و سه دختر داشت وقتی که خیلی پیر و فرطود شد و پایان عمر خودش را نزدیک دید یک روز فرزندان خودش را صدا زد و رو به پسران خودش کرد و گفت پسران عزیزم آخرین خواهش من از شما اینه که هر کدوم از خواهرانتون رو به نخوستین کسی که به کاری اونها میاد بدید نفرین من تا پایان عمر همراهتونه اگر از این امرم سرپیچی کنید این حرف آخرین کلماتی بود که از دهانش بیرون اومد چون بعد از گفتن اونها افتاد و مرد وقتی که قلب اون از زدن ایستاد طوفانی سهمگین ایجاد شد که تا چند روز ادامه یافت شبی خانواده و خدمتگزاران تزار در کاخ نشسته بودند که یک دفعه در میان قرهش و فریاد و همهمه رعد و برق در بزرگ کاخ به صدا درآمد ترس و وحشت کاخ را پر کرد انگار که کاخ از چهار طرف مورد حمله آتیش قرار گرفته بود همه ساکنان کاخ در پشت دیوارهای اون از ترس مصر بیت به خودشون میلرزیدند. بعد در میان هم همه همه صدایی به گوش رسید که می گفت ای تزار زادگان جوان در رو بروی من باز کنید. پسر بزرگ گفت نه باز نکنید. پسر میانیم به شتاب گفت مباده در رو باز کنید. ولی پسر جوان تر تزار گفت من در رو باز میکنم. بعد بلند شد و در باز کرد. تا در باز شد چیزی وارد کاخ شد. اما تزارزادگان نتونستن اون خوب ببینن. چون هیولایی بود که از اطرافش آتش زبانه میکشید کشید. هیولا به سخن اومد و گفت من به خاصگاری خواهر بزرگتون به اینجا اومدم و میخوام همین الان اونو بردارم و با خودم ببرم. من وقت و حسری سب کردنم ندارم و یک بار به اینجا نمیام. همین حالا جوابمو بدید که اونو به من میدید یا نه میخوام بدون درنگ از تصمیم شما آگاه بشم برادر بزرگتر که خیلی وحشت زده و ترسیده بود گفت نه من خواهرمو رو به شما نمیدم چطور میتونم این کار رو بکنم در حالی که نمیدونم تو از کجا میای کی هستی چه ای تو امشب به اینجا اومدی و میخوای همین الانم اون برداری و با خودت ببری من حتی نمیدونم که بعدها خواهرم رو در کجا میتونم ببینم. برادر وسطی هم که در کنار برادر بزرگتر استاده بود گفت منم نمیتونم خوهرمون بهت بدم. برداری با خودت ببری. در این بین برادر کوچکتر داد زد. اگه اونا هم نخان خوهرمون به تو بدن من بهت میدم. بعد رو کرد به برادراشو گفت آیا شما فرمان پدر محتضرمون رو به این زودی فراموش کردید؟ بعد رفت و دست خواهر بزرگترش رو گرفت و آورد و توی دست قول نهاد و گفت بگیر و با خودت ببر. امیدوارم که با اون به خوشی خور زندگی کنیم. خواهرشون با قول بیرون رفت و در تاریکی شب از دیده ها پنهان شد. کاخ نشینان بسیار ترسیده بودند. چون رعد و برق تندتر و سختتر شده بود و دیوارهای کاخ مثل خونه های کاغذی در برابر تندباد می لرزید. شب سپری شد و سپید دمید سر و صداها خوابید. بعد که اولین اشعه خورشید بیرون اومد تزارزادگان جوان از کار خارج شدند تا مگر نشان پای خواهرشون رو روی زمین پیدا کنند و بدونن غول اون رو به کجا برده ولی چیزی ندیدند نه نشانی از رد پا در روی زمین مونده بود و نه کوچکترین صدایی به گوش میرسید شب بعد هم باز همون حوادث تکرار شد و در همون ساعتی که رعد و برق میزد و تندر می‌غرید در کاخ رو زدند و صدایی از پشت اون به گوش رسید که میگفت ای تزار زادگان جوان در رو به من باز کنید ترس و وحشت بر دل کاخنشینان نشست ولی بالاخره در رو باز کردند تا در باز شد چند قول هولناک وارد شدند و گفتند سرور ما میخواد دومین خواهر شما رو به زنی بگیره ما از طرف اون به خواستگاری اومدیم برادر بزرگتر گفت من اونو به شما نمیدم که با خودتون ببرید برادر دومیم گفت منم حاضر نیستم اونو به شما بدم اما برادر کوچکتر گفت من اونو به شما میدم بعد رو کرد سمت برادرانشو گفت مگر فرمانی رو که پدرمون توی بستر مرگ درباره خواهرانمون به ما داد فراموش کردید بعد دست خواهر میانی خودش رو گرفت و در دست قولها نهاد و گفت امیدوار و آرزومندم که خواهرم با سرور شما به خوشی خورمی زندگی کنه. قولها از کاخ بیرون رفتند و به زودی از دیده ها ناپدید شدند. فردای اون روز سه برادر از کاخ بیرون اومدند و همه جا رو برای پیدا کردن رد پای گشتند تا مگر بدونند که قولها اون رو به کجا بردند. اما از جست جو و کوشش هیچ سودی نبردنند و نشانی از خواهر خودشون و قولها پیدا نکردند انگار که نه قولی وجود داشت و نه در شب سوم باز درست در همون ساعت که رد و برق و طوفان بود باز هم صدایی از بشا در شنیده شد که میگفت ای زدگان جوان در و باز کنید. برادر کوچکتر از جای خودش بلند شد و درو در باز کرد. این بار هم قولی بزرگ وارد شد و فریاد زد که من اومدم از خواهر کوچکتون خواست کاری کنم. برادر بزرگتر و برادر میانی جواب دادن ما تو این نیمه شب خواهر کوچکمون رو بتون نمیدیم که و با خودت ببری. حداقل این بار باید بدونیم که خواهرمون کجا زندگی میکنه تا هر وقت دلمون براش تنگ شد بتونیم به دیدنش بیاییم. اما برادر کوچکتر طبق معمول با اون دو نفر مخالفت کرد و گفت اگه شما نخواهید من اونو به این قول میدم. مگه فراموش کردید که پدرمون در بستر مرگ به ما چی گفت هنوز که زمان زیادی از اون روز نگذشته بعد دست خواهر خودش رو گرفته و توی دست قول نهاد و گفت بیا خواهرم رو بگیر و با خودت ببر امیدوارم که با هم به خوشی خورمی زندگی کنید بعد از اونکه قول با دختر تزار از کاخ بیرون رفت و رعد و برق و طوفان خوابید سه برادر نگران حال خواهرانشون بودند بسیار آشفته و غمگین بودند ده هفته گذشت و کوچکترین خبری از خواهرانشون نشد دیگه طاقت برادران از دوری خواهران تاق شد و سخت نگران و دلاشفته به شور نشستند برادر بزرگتر گفت دریق و درد که نمیدونیم خواهران عزیزمون کجا رفتن و چه بر سرشون اومده آیا برای ما شرماور نیست که ندونیم اونها با چه کسانی و در کجا زندگی میکنند برادر میانی گفت بیایید بریم و بگردیم بلکه نشانی از خواهران بیچاری خودمون پیدا کنیم سه برادر تصمیم گرفتند که برای پیدا کردن خواهرانشون وارد مسیر گشت و جستجو بشن. اسبان سفر رو فراهم کردند به مقدار کافی پول برداشتند و برای یافتن خواهران خودشون آماده که سفر دور و درازی شدند اونها با پای پیاده برای افتادند چون با خودشون فکر میکردند که به این ترتیب بهتر میتونند جای خواهرانشون رو پیدا کنند. رفتند و رفتند تا به پای کوه بلندی رسیدند و به هزار رنج و سختی شروع به بالا رفتن از اون کردند. همه روز از کوه بالا رفتند تا تاریکی و شب فرا رسید. چون خیلی خسته و فرسوده شده بودند سعی کردند که چشمه آب پاکی پیدا کنند و در کنار اون چادر بزنند و شب رو در اونجا به روز بیارن. در این فکر بودند که، به کنار دریاچه رسیدند اونجا نشستند و آتشی روشن کردند شام خوردند و خواستند بخوابند که برادر بزرگتر گفت شما بخوابید من نگهبانی میدم دو برادر دیگه که راه پیمایی طولانی حسابی خستشون کرده بود پیشنهاد برادر بزرگتر رو با خوشحالی پذیرفتند و خوابیدند شب بسیار تار بود و چون شب به نیمه رسید آب دریاچه تکان خورد برادر بزرگتر در تاریکی به دریاچه خیره شده بود و سر تا پاش می‌لرزید. چون دید که چیز بزرگی از آب بالا میاد و به طرف اون حرکت میکنه. چون اون هیولا نزدیکتر شد، دید که اژدهایی ترسناک با دو گوش بسیار بزرگه. اژدها از دریاچه بیرون اومد و خودش رو به روی تزارزاده انداخت. جوان و عقب پرید و بدون درنگ شمشیر رو بیرون کشید و با همه نیرو و قدرت اون را بر سر ها زد. بعد دو گوش ها رو برید و در جیب خودش نهاد. موقعی که خورشید سر زد برادران کوچکتر هنوز در خواب بودند و از اونچه که اتفاق افتاده بود کوچکترین اطلاعی نداشتند. برادر بزرگتر بیدارشون کرد اما درباره کار قهرمانانی خودش چیزی به اونها نگفت. دو برادر بیدار شدند و دوباره با برادر بزرگتر در مسیر جستجو وارد شدند. وقتی که شب شد، دوباره به کنار دریاچه رسیدند و آتشی روشن کردند و شام پختند و خوردند. بعد برادر دوم گفت، امشب شما دو نفر بخوابید. من بیدار میمونم و کشک میدم. دو برادر خوابیدند و برادر دوم در کنار آتش بیدار نشست. چون شب به نیمه رسید و دو برادر در خواب فرو رفته بودند، یک دفعه صدای شلپ شلپ آب به گوش برادر دوم رسید. خوب که نگاه کردید که ای داد بیداد، اژدهای دو سر داره از اونجا بیرون میاد و میخواد به هر سه برادر حمله کنه و اونها رو بخوره. تزارزاده به چالاکی بلند شد و شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید. محکم سر جای خودش ایستاد و چون اژدها خودش رو بر اون انداخت، هر دو سر اون رو با یک ضربه شمشیر انداخت. بعد دو گوش اون رو برید و در جیب خودش نهاد و تن ها رو در دریاچه انداخت. اون هم مثل برادر بزرگترش برادرانش رو بیدار نکرد و چیزی در این باره به با اونها نگفت و گذاشت تا آفتاب بر اومد و اونها آسوده و راحت بخوابند. وقتی که خورشید سر زد، دو برادر خودش رو بیدار کرد و گفت: برادران، بیدار بشید. آفتاب بر اومده. اونها بلند شدند، صبحانه خوردند و دوباره خودشون مسیر رو در پیش گرفتند و هیچ نمیدونستند که در کجا در چه سرزمینی و قلمرو کدوم فرمانروایی سفر میکنند کم کم ترسی تو دلشون خونه کرد پایان جنگل بزرگ پیدا نبود و چون ذخیره غذایی که با خودشون آورده بودند داشت تمام میشد خطر گرسنگی هم تهدیدشون میکرد سه روز بود که راه می رفتن و با موجود زنده برخورد نکرده بودند اون سه نفر دست به دعا برداشتند که به زودی به دهکده یا شهری برسند یا با فردی روبرو بشند و راه رو ازش بپرسند چون هنوز انتهای جنگل انبوه دیده نمیشد. بعد از غروب آفتاب به کنار دریاچه بزرگی رسیدند و تصمیم گرفتند که شب رو در اونجا بخوابند چون ترسیدند که دیگه آبی سر راه خودشون پیدا نکنند آتش بزرگی ایجاد کردند و گوشت اندکی رو که داشتن پختند دخوردند. بعد گلیم رو پهن کردند و آماده خواب شدند. کوچکترین برادر گفت: حالا نوبت منه که امشب نگهبانی بدم. شما راحت بخوابید، من در کنار آتیش بیدار میشینم. دو برادر خوابیدند و برادر کوچکتر بیدار نشست. اون بیشتر به دریاچه نگاه کرد. تا چند ساعت همه چیز و همه جا در آرامش و خاموشی بود. یک دفعه نیمه شب دریاچه توقیان کرد و امواج اون به شدت به سنگهای ساحلی خورد و موجی بر روی آتش شیخت اون رو تقریبا خاموش کرد. تزارزاده از جا بلند شد، شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و در کنار آتش ایستاد. یک دفعه اجده های سه سر بسیار ترسناکی از بین آبهای تیره بیرون پرید و اومد که ستا تزارزاده رو بخوره. تزارزادی جوان که دلی آهنین و بیباک داشت بدون اون که برادرانش رو از خواب بیدار کنه یک تنه در برابر اژدها ایستاد و با سه ضربه پشت سر هم سرهای اون رو انداخت گوشهاش رو برید و در جیب خودش نهاد و سرها و تنه اژدها رو در دریاچه انداخت. در این بین آتش که مدتی از اون مراقبت نشده بود کاملا خاموش شده بود برادر کوچکتر چیزی نداشت که باهاش دوباره آتش رو روشن کنه برای آنکه خواب برادرانش رو به هم نزنه، به تنهایی به جنگل رفت تا هیمه‌ای برای درست کردن آتش جمع‌آوری کنه. اما شب بسیار تیرو تار بود و اون جایی و چیزی رو نمیدید. یک دفعه در تاریکی دستش به تنه درختی خورد و تصمیم گرفت که از اون بالا بره. از درخت بالا رفت تا اینکه ببینه اطرافش چه خبره و نشانی از چیزی پیدا میکنه یا نه. یک مقدار که دورو برش رو نگاه کرد و به چشمای خودش فشار ورد یک پرتو بسیار کمرنگی رو اون دور دوردورها دید از درخت پایین اومد و به اون سمت روان شد و خودش گفت چرا بیشتر اونو ندیده بود داشت که از اونجا آتشی بگیره و به پیش برادرانش برگرده مدتی در تاریکی راه رفت آتیشی که از بالای درخت مثل ای بود هرچه اون پیشتر میرفت بزرگتر میشد. خب دوستان عزیز تا اینجای داستان رو داشته باشید تا ببینیم در قسمت بعدی 3000 زاده سرنوشتشون چی میشه و بالاخره میتونن خواهرانشون رو پیدا بکنند یا نه. روز و روزگار خوش. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمینهای سحرآمیز سفر کنیم جایی که پری‌ها و